فصلون فل مزافه لا یا متکلم فصلی رو منعقد میکنه به عنوان کلماتی که اضافه میشن به یا ام متکلم مضاف به سوی یا ام متکلم خصوصیاتی داره به خاطر همین یک فصل براش باز میکنه کلماتی هم که اضافه میشن به یا ام متکلم دو جورند یا اسمای سته هستند یا غیر اسمای سته از نظر ابن مالک چون اسمای سته مثل سایر اسما به حساب می آمده یعنی فرقی بین عب و غلام نبوده هر دو اضافه می شدن می شده چی؟ عبی غلام چون فرقی نبوده لذا پس مناورین باب جداغانهی باز نکرد ملا جلال منباب خاتمه این مبحث رو ذکر میکنه یعنی یه خاتمه‌ای در آخرین فصل میاره به عنوان اسما ای که اضافه شدن به سوی یاه متکلم که گفتیم از نظر مصنف ما اسما سته با دیگر اسما فرقی نداره ولی از نظر دیگران که فرق داره آی ملا جلال دو خاتمه ذکره پس ابتدا فصلی رو در مضاف به سوی یا متکلم غیر از اسماء سته قایم خون که از نظر مصنف ما اسماء سته هم به همین گونه است فصل فل اس فل مضاف الی یا متکلم از صحیحو یعنی ال قول صحیحو قول صحیح اینه که انهم عربون این که مضاف به سوی یا متکلم معرب است بقلش بنویسید مطلقا مطلقا معرب است یعنی چی؟ یعنی معربون تقدیرن معربیه تقدیری مضاف به سوی های متکلم سمدیه بلدید مثل غلامی که اضافه می شد به سوی های متکلم اعرابش می شد چی؟ تقدیری جا غلامی رعی تو غلامی مرر تو به غلامی معرب بود تقدیرن یه استلاحی دارن نحوی ها اینجا میگن چی؟ میگن لشتغال المحل به لحرکت المناسبه میگن چرا معرب شده تقدیرن؟ میگن لشتغال المحل اولا معربه چون دلیلی بر بناش نداریم از اون شباحت که اول کتاب سیوتی یک خوندیم هیچ اینجا نیست معرب است پس بنابراین حالا موربست چرا تقدیرن؟ به دلیل اینکه که الاشتغال المحل به حرکت مناسبه چون یا ما قبل خودش رو چی میخواد؟ مکسور میخواد؟ میم غلامی شده چی؟ مکسور وقتی محل حرکت مناسبی پیدا کرده حرکت مناسبتی پیدا کرده دیگه جایی برای حرکت اراغ نیست چون هر حرفی یه دونه حرکت میتونه داشته باشه حالا این وقتی حرکت مناسبتی داره دیگه حرکت اعرابی جا نداره لذا در حالت رفعی مرفوع از تقبیرم در حالت نسبی منصوب از تقبیرم در حالت جلیم برخلاف بعضی مثل هدایه مجرور است تقبیرم چون اون کسره باز کسره اعرابی نیست وقتی میگه مرفض به غلامی اون ممکسوره اما کسره کسره اعرابی نیست همون کسره چیه؟ مناسبه به اشتغال مهد به حرکت مناسبه فلحالات سلاست در هر سه حالات رفت اونست بوجه این نه معربون ما که میگیم معربه که دلیل نمیخواد بیاریم چرا؟ چون طبقه اصل گفتیم اسم است اصل در اسم اینه که چی باشه؟ معرب خلاف ابن لبن الخشاف. بر خلاف آقای ابن الخشاف ول جرجانی و شیخ القاهره. جورجانی. یعنی خولف و خلافن لبن الخشاب و جرجانی خلاف و مخالفت شده تو این نظر با آقای ابن خشاب و جرجانی فی قوله ما در قول این دو نفر که چی گفتن؟ این قولشونه که گفتن این نهو گفتن این کلمه مضافر سویه های متکلم چیه؟ مبنیست این نهو چرا مبنی است اونا بعد دلیل بیارم. میگه ل اضافه غیر, غیر متمکن غیر متمکن یعنی چی مبنی میگه چون اضافه شده به سوی مبنی چون اضافه شده به سوی مبنی مضاف از مضاف الیه کسب به چی کرده بنا کرده خب این حرف در کمال چیه؟ ضعف چون فقط این نیست که یا نیست که مبنی سایر چیز هم چیه مبنی اگه قرار باشه هر چیزی اضافه به مبنی بشه کس به بنا بکنه خیلی چیزها رو باید گفت مبنی است در صورت که اینطور نیست <تصفح> به اضافتی اله غیر متمکنه این ل اراب علت است برای اون معربان مشخص و علت هست برای رد قول آقای ابن خشاب و جورجانی. یعنی به نفع معربان و بر خلاف که آقای ابن خشاب و جرجانی داره میگه میگه لعرا بل مضافعلا الکاف ولها میگه مبنی نیست چرا لعرا بل مضافعلا الکافر ولها میگه واسه خاطر که ببینید حالا یا ما قبل خودش چی میخواد مکسور میخواد اعراب حرکه مناسبتی میدید اعراب میشه تردیری اما ها زمیر هستن یا نیستن زمیرن دیگه مضافه به اینها ماربه یعنی شما میگید جا قلامک رعی تو قلامک مرر تو به قلامک همینطورم هم قلاموهو قلامهو قلامه, هو. قلامه, هو قلامه ای. میگه لعراب المضافه لالکافه برها اگر حرف شما درست بود که اضافه به مبنی باعث دنامی شود. خب این هم مبنی هن دیگه زمیر هن مثل فهمون ول موسنا ول جم ول موسنا اتفاست به جای مزاف لعراب المزاف ولعراب المسنا المزاف لعراب المسنا المزاف ول جم المزاف جم امند میگه شما تصمیه و جمع رو ببینید موقعی که اضافه میکنید درست این یا تصمیه و جمع حالا تصمیهش که دیگه راحت راحت یه یعنی شما مثلا اگر بیاید این این بلمسننا رو واسه این گفته که یه موقع شیخ عبدالقاهر ممکنه برگرده بگه آقا ما منظورمون از اضافه به غیر متمکن هر غیر متمکنی از زماهر نیست بلکه فقط خصوص یاست این از خصوصیات یاه میگیم اینم باز درست نیست. چرا چون بگی اگر از خصوصیات یا هم هست ما میگیم که تصمیه رو اضافه کن حالا مفرد موقعی که اضافه میشه حرکت مناسبتی پیدا میکنه ها چون دیگه آخرش حرکتی نیست که تشخیص بدیم ولی تصمیه رو شما اضافه کنید مثلا غلامان رو غلامان رو اضافه کنید به یا میگه چی؟ غلام در حالت جرالته رفیق. در حالت نسبی جدی میگی چی؟ غلامی این نشون دهنده چیه؟ اینجا الف و یا میشه نشون دهنده اعراب دیگه اعراب تثنیه رو پیدا میکنه. اگر بگه تثنیه موارزه کرده. میگیم نمیتونه تثنیه اینجا موارزه کنه. ای گفتی چرا؟ مثل لالا مثل یازاینه. چرا؟ چون اول تصمیه است بعد آمله بنا میاد آمله بنا بر عامل تصمیه چیه؟ معخره اونی که بعد میاد حکمش قوید تره یعنی شما مثلا هازانه و علزانه را اول کتاب سیوتی یک خوندید هازانه و علزانه را میگفتید چیه؟ موربه میگفتید چرا؟ میگفتید تصمیه با بنا معارضه که شباعت بنا بوده؟ بعد تصمیه از خصائص اصما اومده برایش چی شده جاری شده دومی زورش بیشتر بوده شدتش مورد در یا زیدن لا رجل این فدار لا ای نفی جنس و یا ندار در اینها چی؟ در اینها در یا رجلان یا زیدان لا رجلی قد دار منادای مفرد مبنی بر اون چیزی که رفعش نمونه مثل یا زیدان لای اینا چه جنسام که نصب میده به اسمش لا رجلنگ نصب تقدیر اینجا محلن منسوبه شما اینجا که دارید میگید لا چرا مبنی بر یا و یانه چرا در یا زیدان مبنی به و نونه چون که تصنیه است میگه واخه تصنیه بوده بعد ندا و لای نفی جنس برایش چی شده؟ آهد شده چون آمله بنا بعد اومده لذا زورش بیشتر در گلامان قلاما که اضافه میشه به سوی. یا اول دستنی هست بعد آمله بنا از نظر شما میاد لذا ولی ما میبینیم باز مبنی نیست گلاما یا گلامی ول مصنل مضافه علال یاهه تمام شد ولی بعضه هم. این لبعزه هم به جای لبن الخشا و خلافاً لبعزه هم بی قوله هم. بعضی از نحوی ها در قولش این گفته "ان نهو یعنی مضافه به سوی های متکلم لیسا به مبنیه مبنی به کی نیست چرا مبنی نیست؟ میگه لعدمش شبه زیرا اون شباهت هایی که اول کتاب خوندیم ایچ کدومش توش پیدا نمیشه. حرف درستیه تا اینجاست کاملا سهیلی لعدم شبه اما ولا معربه معرب هم نیست میکیم این دیگه چرا؟ میگه عدم تغییر حرکتی زیرا حرکت آخرش تغییر نمیکنه حرکت آخرش این بر علیه معرب نیست چون حرکت آخرش تغییر نمیکنه علیله به چه دلیل؟ به دلیل که ما معرب تغییری هم بگیر داریم درسته ال اعراب آخر آخرهو به اختلاف عوامل. اونیه که آخرش به اختلاف عوامل تغییر کنه اما رو میگن المعرب مختلف آخرهو به اختلاف عوامل لفظن و تقدیرن این تقدیریش هم هست هرچیزی که آخرش تغییر نکرد دلیل بر این که مبلی باشد نیست دلیل بر این که معرب تقدیری ممکن. ولا معرب لعدم تغییر حرکتی این نیست که هر چیزی که آخرش تغییری نمیکنه معرب نیست ما معرب تقدیری هم داریم این چون دیگه واضح بوده رد قسم دومش ذکر ردیشو نکرده درست شو بلکه تغییر پیدا کرده آخرش اما تغییر چی تقدیری خب حالا ببینید از نظر گوش از نظر کلی که میخوایم بحث کنیم کلمات کلماتی که می اضافه بشم به سویگاه کلمه در نحوه یا صحیح یا چیه معتله این دو قصره دیگه صحیح مثل غلام معتل دو جوره آه؟ گفت معتل دو جور داریم چی داریم یکی مثل مصطفی و یکی مثل مرتقی مصطفی رو گفت چی؟ مقصور مرتقی رو گفت منبوس. اول کتاب سیوتی یک و سم معتل من الاسماء ما کل مصطفی و مکار ما فل اول اعراب و فیه قد را جمیعه و هول لذی قد قص را و سانی منغوس و رس زهر و رفعهویون و کذا عیزند یا یا صحیح هست یا موتن دو قسم مثل غلام و مثل بگید رامن و قضا قضا مثل مصطفی رامن مثل مرتلی صحیحش هم مثل غلام هر کدوم از اینها جاری مجرا دارند. ما یه جاری مجرای صحیح داریم یه جاری مجرای معتل جاری مجرای صحیح اونیه که آخرش حرف لده دارد یا یا یا واق اما ما قبلش چیه؟ ساکنه ما قبلش چیه؟ ساکنه مثل زبی و دلده کتابه دایه اینو میگن جاری مجرای صحیح مثل صحیح یه جاری مجرای معتل هم داریم جاری مجرای معتل تصنیه است و جمع سالم پس کلمات چند قسم شد؟ چهار قسم سهی و جاری مجرای سهی مثل قلام و زبی و دل معتل مثل رامن و غذا و جاری مجرای معتل مثل چی؟ مثل تصنیه و جمع سالم درست شو حالا با این مطلب که دونستید نگاه کنید آخر ما اوزیفللیا اکسری آخر ما اوزیفللیا اکسر اضاف لم یک و معتلن کرامن و غذا میگه آخر آنچه که اضافه میشه به سوی یا کسره بده کسره مناسبتی دیگه اشتغال محل به حرکت مناسبت ازالم یک و معتلن اگر معتل بگید نباشه مثل رامن و غذا معتلش مثل رامن و غذا مثل رامن و غذا نباشه معتل نباشه یعنی چی؟ یعنی صحیح باشه یا جاری مجرای صحیح آخره ما ماعوزی فلیلیا اکسری آخره مفعولون به اکسره یعنی اکسر آخره و اضافه شده به سوی ماه اوزیف لیلیا ف و زمیر نایب و آهدش لیا لامش به معنای الاس متعلق است به اوزیف کسره بده آخر آنچرا که اضافه شده است او به سوی یا این کلش میشه دلیل و الجزا اون اضاف ما بعدش چیه؟ قیل شرطشه دیگه اذا لم یکو معطلن کرام و غذا اضافه اضافه از ازات شرد اضافه میشه به فعل شرد منصوبه به جزاء شرد لم یکو نونش میاد باب تخفیف افتاده دیگه لم یکو فعل شرد گفتیم جزاء هم به قرینه دلیل الجزاء چی شده از شد. لم یکو ضمیر می میخوره به زمیر اسمش که میخوره به ماعوزی فلیلیا زمیر اسم کنه معتلن خبرش مثالهو کرامن و غذا مثالش مثل چی؟ رامن و غذا رامن و غذا رامن مثل مرتقن منقوز غذا مثل مصطفی مخصول کرامن و غذا مثالهو کرامن و غذا یه جمله آقا امیرالمومنین داره در نهج البلاغه میگه صبرت و فعل حلقه شجا و فعل عینه قضا میگه من صبر کردم در دوران این خلفا و فعل حلقه واو حالی است و حالا که در حلقم شجا استخوان گیر کرده بود و فعل عینه قضا و در چشمم خار داشتم حساب بکنید اگر کسی در است خان و در چشم خار داشته باشه آیا آسایش او هست میگه در طول این مدت مدت 25 سال من به دین شکل سبر کردم شکننده کرامل و غذا خب گفت خب آخر اونی که اضافه میشه به سوریا کس بده؟ اگر معتل یا جاری از جای معتل بگی نباشه آخر اما اوزیفللیا اکسر اظالم یا و معتل میگه وقتی معتل میگه منظورش جاری مجرای معتل چیه؟ هست معتل نباشد او جاریان مجراه یا جاری مجراه معتل نباشد جاری مجراه معتل گفتم چیه؟ تصنیه و جمع ساله جاری مجراه و میخوره به معتل معتل یا جاری مجراه معتل نباشد یعنی چی باشد؟ صحیح یا جاری مجراه سحیح کس بی و غلامی صاحبی و قلا صاحب مشتق قلامتی جامل هر دو چی هم؟ صحیح هم. صاحبی و قلا و زبی و دلبی جاری مجرای صحیح هم یکی یا یکی چیه؟ باید. چون کسره ببینید کسره اینجا نگاه کنید کسره در اینجا مثل زبی و دلوی با که کسره میدیم به واب کسره بر واب و یا سقیل نیست چون گفتم از نظر سرفی میگن زمه و کسره بر واب که ما قبلش سکوته یا ما قبلش سکونه زبان استراحت کرده زمه و کسره براش سقیل نیست لذا مثلا مجبول وعده میشه چی؟ وعده زمه سقیل نیست مجبور یسره یسره ها و زمه بر یا سقیل نیست چون ماقبلش سکوته زبان استراحت داشتی یه باره با یه کلمه شدید رو براو بشه که حرف شدید داره میتونه بگیم همینطور اگر ماقبلش چی باشه؟ سکون باشه مثل زمه و دل زمه بر یا بگید و واب کسر و یا و واب در این دو صورت به خاطر سکون و سکوت ما قبل سقیل نیست چون زبان استراحت داشتیم زبی و ولکه و لکه و جایز از برای تو هینه در این هنگام که صحیح یا جاری مجلعه صحیح رو اضافه کردی به سوی یا فلیائه جایز از برای تو در خود یا الفتح و فتحه بدی و سکون رو یا چیکار کنی؟ سکون یعنی بخونی صاحبی یا بخونی چی؟ صاحبیه بخونی غلامی یا بخونی چی؟ غلامیه اختلافم دارن که آیا فتح اصل یا بگی سکون ادهی فتح و اصل دونستن ادهی سکون اونایی که سکون رو اصل دونستن خب معلومه میگن چی؟ یا مبنیه ها و در هر مبنی اصل چیه؟ باشه. بله اصل و مبنی اونایی هم که میگن فتح میگن اگر مبنی یک حرفی باشه، اصل اصل دارو چیه؟ اصل دارو ابتدای و مثل واو اع. میگیم یا که متصل میشه، میگه چون اضافه میشه و مرکب میشه یا به تنهایی سقیله لذا فتح گفتن ولی سکونش به نظر راحت تر میاد به عنوان اصل باشد تا بگیر فتحش چون گفتن وقتی که این اضافه میشه و مرکب میشه با مضاف میشه به شکلی یک کلمه سقیل میشه انگار ما یا رو دوباره از نو داریم شروع میکنیم مثل واقع عطف. یعنی ابتدای به حرکت یه موقع مثل واقع ابتدای حرکت حقیریه یه موقع ابتدای حرکت ابتدای حرکت حکمیه یعنی ما رو نمیتونیم اینجا به شکلی یک کلمه تلفظ کنیم مثل غلامی رو چون اضافه شده و مرکب شده سقیل انگار گفتیم غلام بعد مثل اینکه بعدش بگیم و اون یا یک حرکت میخواد چون خودش یک حرف مستقل به حساب میاد ابتدا میخوایم انگار بکنیم یک کلمه ای دارا و حضفها پس میتونیم بگیم صاحبی میتونیم بگیم صاحبیه قلامی قلامیه زبی زبیه دلوی دلویه و حضفها این دوتا لغت جایزم از حذفش کنیم چی رو حضف کنیم؟ یارو بگیم رب استجنو اعب و علیم ما یدوننی علی. یا قومه یعنی یا قومی درست؟ و هزفها لدلالت کسره علیه هاتون چون کسره وریات کار میکنه دلالت میکنه آه؟ نه با مثال لکم دینکم، کم ولیه دی نه، یعنی ولیه چی؟ دینی کسره وریات دلالت ببینید مخصوص به باب ندا هم نیست این پنج دا گرهوندن الان لکم دین و کن ولی دین در غیر باب نداست مبتداست و رب از تجن و احب و باب نداست فرقی نمیکن لدلالت لکسره علیه ها خلیله خلیله یه چی؟ خلیلی خلیلی مبتداست املک و منلی املک و خبرشه منلی متعلق به املک دوست من سروتمندتر است از من به لزی کن به لزی کسبت یدی یعنی کسبت و یدی دوست من مالکتر است از من نسبت با آنچه مالکتر هست آنچرا آنچرا کسبت و یدی دست من کسب کرد یعنی دوست من از من مالش چیه؟ بیشتره املک و خبر منی متعلق به املک به لزی هم هنم. کسبت خویدی آید سره هست شده پهل و فایل یدی و مالی فی ما یقتنی تمعون او مالکتر است از من نسبت به آنچه که من به دست آوردم و مالی فی ما یقتنی تمعون یقتنی تمعون و حالان که مالی تمامون ما ما مشبه بلی لی خبر مقدم تمام مقعخر جا عوض شده عمل نمیکنه و حالان که نیست برای من تمی فیما یغنی یعنی فیما یغنی حوااقاف یغتنی یعنی یک تسه فیما یک تاسه بحق و حالان که من هم در آن چی که او به دست میاره بگید ندارم او درست از من مالش بیشتره من هم نظری به مال او بگید ندارم و مالی فیما یغتنی تنام فیما یقتنیه یقتنی پر زمیر فائلش آید سلش هم هر شده زمیر منصوب شاید سری خلیله است که خلیلی بود این سه وفت خوما وليت خو جایزم هست ما قبل یا رو فتحه بدیم وفت خوما ولیت خو فت قلب و علفا بعد خود یا در طرف واقع شده ما هم مفتو قلب رو چی میشه؟ علف میشه فت و علفا نه با مثال اتبف ما اتبف سمعا بی یه نصف مس یک مس راه. ایلا و یارویی نی ان او و یارویی نی ان نوی او. اتاق به فو یعنی چرخید گردید. اتاق به تطویف حتیف رو میرسونه بابه هفتیده برای مبالغه مثل الذي جمعاعماللا و عدد یعنی هی میشمره هی میشمره اتف یعنی هی می گردم می گردم می گردم ماف تف ما اتف ماش ما مطری اضرففی است یعنی مدت تطویر. هی می گردم در اون موقع که دارم می گردم در وقتی که دارم می گردم ثم. یعنی یه مدت زیادی میگردم گزفندانم و میچرانم همه کارامو میکنم سمعاوی الاؤمه اوا یعوی یعنی جا گرفت معواز از همینه سمعاوی الاؤمه سپس جا میگیرم پیشه مادرم میان پیشه مادرم الاؤمه شاید مثالی که الاؤمه چی بوده؟ امی بوده سمعاوی فعل و فاعل انا فاعلشه الاؤمه متعلق بوده و یروینی اندقی او آوی و یروینی یروینی یعنی سیراخ میکند مرا و تشنگی مرا برطرف میکند اندقی نقی دوغ رو میگن آو شیرین و هم میگن یعنی میان خستگیم در میکنم یروینی فعل و مفعول نونه بقایی هست اندقی رو او بشه میگه میچرخم و میچرخم بعد میام پیش مادرم از دو یا از آب شیری استفاده می کنم و رو در می شاید سر اوم ماست که امی بودی. این چند تا لغت چهار تا نه و حذف فل لغت بعدی حذف فل علیف و بیبرا اولفاد حذف کنیم علیف رو همین علیف رو علیف همین علیف رو فتوقل با بعد میگه و حذفل علف عل علف اینه حد همین علف رو حذفش کنیم و ابغاول فت و اون فتح ما قبلش لدلاله باقی بگذاریم این هم لغت آخر نهو تو به مدرکن ما فاتمنی به لحفه ولا به ولا لعنی میگه و لستو به مدرکن مدرک یعنی به دست آورنده جبران کننده لستو تا اسمش بابای زایده مدرک لفظم مجرور محلن منصوب خبر لستوست لستو به مدرکن من نیستم جبران کننده و به دست آورنده ما مفعول است. آنچرا که فاتمینی از من چی شده؟ فوت شد میگه من نمیتونم به دست بیارم آنچرا که از من؟ خود شده ما فاتح منی فاتح زمین فایلش که آید سلرم است منی متعلق فات میگه من به دست نمیارم آنچه را از دست دادم به این با متعلق است به مدرک من به دست آورم با لحف این بوده لحفی یعنی تحسری با حسرت خوردنم این لحفی شده لحفا علف شده عذب شده شده چی؟ لهفت میگه من با تحسر و حسرت نمیتونم اون چیزی رو که از دستم در رفته به دست بیارم ولا لا یعنی و بولا بلایتی و با لایتهای خودم هم بگیر ای کاش ای کاش گفتن های خودم هم نمیتونم این روز کار کنم به دست بیارم باظره این بلحفی بوده و بلایتی یعنی با لایته های خودم و با حسرت های خودم نمیتونم این رو جبران کنم ولا لو انی یعنی ولا بلو انی و با لو انی لو انی هم نمیتونم این کارو بکنم لو انی یعنی چی لو انی چزا اگر من اینطوری بودم فلان میشد اگر من اینطوری بودم یعنی با اگر گفتن و ای کاش گفتن و حسرت خوردن من نمیتونم اون چیزی رو که از دست دادم دوباره به دست این لوانی اطفاست به جای لحفه یعنی بلوانی انی بلوانیت هم همینطور اون لاها تحکید نفی قبل میکنه تحکید نفی لعی سر شاید سر به لحفه بوده که به لحفی بوده و به لعیته که به لایتی بوده پنج تا لغت اولا یاد بگیرید یه نکته گفتم گفتم این پنج تا لغت مخصوص باب ندا نیست حالا انشاءالله تو باب ندای همین کتاب خواهیم رسید که همین پنجتا لغت رو چه کارش میکنه؟ نقلش میکنه تو آخر باب ندا هم یه فصلی مثل همین دایر میکنه این یه نکته نکته دوم اینه ببینید این پنج تا لغتی که ما گفتیم در اضافه معنوی جایزه مثل غلام، زب، در در اضافه لفظی مثل زیدون، زار الانه او قدم زیدون زاردی الان او قدم مشخص اگر اضافه اضافه لفظی باشه مثل زیدون زاردی الان او قدم در اینجا دو تا بیشتر جایز نیست یا سکون یا فرد یا سکون یا بگید بد، دیگه غیر از این جایز نیست یا سکون جایز هست یا بد مشخص نمیشه اون جزء دوم رو یعنی در اضافه لفظی چون اضافه لفظی؟ مضافه لفظی؟ در حکم چیه؟ انفصاله، یادتون هست یا نیست؟ در اضافه لفظی مضافه لفظی در حکم؟ انفصال نمیشه مثل جز اکلمه حسابش کرد و درش اعلال جاری کرد و حسبش کرد یعنی مثلا ما حسبش کنیم بگیم کسی برش دلالت میکنه مثل جز اش حساب کنیم یا بیایم بگید ما قبلش رو فتحه بدیم مثل ازرا که جمعش میشه ازاری بعد ما ازاری رو فتحه میدیم میگیم ازارا آن تعلق واش که صوفی ام الخوایس اشخان اش فالنا و اهلام قبلت العزارا این عزارا عزاری صحارا سهاری، جمع صحرا ما را رو فتح می بعد یا رو تبدیل به الف می کنیم رو در یک کلمه جاری می در جایی که جزء کلمه باشه در مضاف و مضاف الیه اضافه معنوی میشه جفتشون رو کل کلمه واحد حساب کرد چون اضافه اضافه معنویست در اضافه لفظی نیست لذا در اضافه لفظی فقط فتح جایز است و دیگر خیلی نیست بریم بالا او یک کپنین کپنین و کپنینه او یک و کپنینه و زیدینه فزی الیا علیاءو بعدو فتحوها احتوزیه احتوزی این رو خوب نگاه کنید از نظر ترکیبی او اوی آتفه یکو عطفه به لم یکوی قبله لذا به خاطر همین مجلوم شده لم اون بر سر این هم در میاد یعنی تقدیبش اینه لم یکو ما او زیفللیا کبلی اینه گفت آخرشو بده اگر چی؟ مثل رامن و غذا نباشه و اگر مثل ابنین و زیدین هم نباشه یعنی تصمیه جمع گفت معتل یا جاری مجرایه موتل نباشه این جاری مجرای موتل ما اوزیف علیلیا کبنین و زیدینه ابنینه و زیدینه نباشه زمیر اسم یک رو که نخوره به ما اوزیف علیلیا کبنین خبرشه و زیدین عطف به جای ابنین فا این فا برای نتیجه و سببیت نقطه سر خطه انگار یه نفر میگه حالا اگر مثل رامن و غذا یا مثل بگید ابنین و زیدین بود چی؟ ها؟ یعنی اگر مضاف معتل یا جاری مجرای معتل بود چی؟ میگه فزی فا نتیجه زی فقط سببیت و نتیجه برای مجرد سببیت است و نتیجه زی مبتداست، مبتدای ارفع زی میخوره به این چارتا چارتا 4 تا کدوم؟ زیدین، ابنین، رامن قزان. معتل و جاری مجرای معتل. فزی، جمیع اوها، جمیع اوها تاکید برای زی، یعنی فقط فکر نکنید میخوره به ابنین و ابنین و زیدین، نه همه، جمیع اوها تحکید معنوی برای زی فضی جمیعه ها علیاءه او. علیاءه مبتده های دوبان علیاءه فتحه ها مبتده های سربان احتوزیه احتوزیه یعنی منطقه انتخاب التخاب شده فل زمیر نایفایلش که میخوره به فت بعدو متعلق است به احتوزیه بعدو متعلق است به کی؟ احتوزیه بعدو بوده بعدها مضافنه لیش افتاده لفظش در نیت معناش در نیت شده مبنی بر زن الان نگاه کنید احتوزیه بعدو خبره کیه فتخوها زمیر احتوزیه رابطه شد بعد فتخوها احتوزیه بعدو خبره کیه علیاء زمیر فتخوها رابطه شد بعد علیاء او فتخوها احتوزیه بعد و خبر زیست زمیری که مضافن لعیه بعد بوده و معناش در نیت رابطه شد معلوم این همونیه که تو کتاب سمدیه بگفت جمعه داریم که از یه جهت سغراس از یه جهت کوبراست. یعنی الان علیه و فتحه ها نسبت به فتحه ها چیه؟ چیه؟ خودش نسبت به زی میشه چی؟ سغره خب پس چیش گفت؟ گفت این چهارتا همشون فتحه یا انتخاب شده بعد از این چهارتا یعنی به همه یاره کار کنی؟ فتحه بدی؟ یعنی مثلا رامی اگر اضافه بشه به یا من بگم چی؟ رامی گرم قضا مثلا قضا حالا قضا نگو اصا کلمه اصا مقام بگم این اصای من است میگم چی؟ اصای ما تلکه بگم اینه که یا موسا گفت چیه دست راسته گفت چی؟ یا اصای اتوکه و علیها و احوشنوبه ها حلاغنمی و لیفی ها مهاه با اصای ابنه این اگر اضافه بشه میشه چی؟ ابنایه ابنایه زیدون اگر از چهارتا اوها همه علیا اون مضافه علیه ها یایی که مضافه علیه بعدو میگه بعدو رو به زن بخون یعنی بعد از این تا واقع شده یایی که مضافه علیه و بعد از این تا واقع شده فتحه ها فتحش حالا فتحه میدیم همی گفتید برای چی؟ برای که التقاط ساکنه میشه دیگه نه؟ قاضی میشه چی؟ قاضیه. هر رو نگاه کنید فتحه بدیم به خاطر التقاء ساکنین فتحه ها لالتقاء ساکنین و سکون الیا یا قبل ساکن میکنیم دیگه فتحه بدیم و سکون الیا علتی فی اخر المضاف فتحه میدیم و یا که ما قبله چی میشه ساکن میشه حالا یا ما قبل ساکن میشه واسه چی واسه یه ادغام بشه دیگه نه و سکون الیا لال ادغام یعنی مثلا قاضی اگر یا ساکن میشه با خاطر چی ادغام وقتی که می میشه قاضی گ اولی را ساکن در حال ادغام دومی را فتح میدیم به خاطر اصل ادغائه ساکنه چون دو تا ساکن به هم دیگه خوردن و چون یاء فتح دادن اولاست که عقب فرعکد اوتضیه اوتضیه یعنی انتخاب سم فی ذلکا تفصیل میگه حالا یادت باشه در این مطلب چیه تفصیل وجود داره درسته که ما گفتیم فتحه بده ولی فتحه دادن دارای چیه؟ شرایطیه هر کدوم از اینها شرایطی دارن خوب گوش کنید صبح مفیزالکه تفصیلان یعنی در این فتحه دادن در معتل و جاری است. معتل تفصیلیست وزالکه اندهو و تفصیلش اینه و باب عاطفه میگاه کنید و تود قمول یا افیه میگه یا در یایی که این چهارتا دارن با همدیگه چی میشه؟ ادغام میشه یعنی قاضی میشه چی؟ قاضی که اگه یا داره پس الف باشه ادغام دیگه صورت نمیگیره تدقم یا او فلیاه یا, یا در یا ادغام میشه تدقم فل علیاء و نایف فائلش فیهه متعلقه به تدقم ولوابو و اگه وابن باشه باز ادغام میشه در یا مثلا زیدون یادتونه مسلمیه درست میکردیم تو سرف میر و تو کتاب سمدیه مسلمون اضافه میشه به سوی چی؟ ایوه. به سوی یا میشه چی؟ ایوه. مسلمویه بعد واو و یا توی یک کلمه جمع میشه سابقشون ساکن واو قلب به یا یا در یا ادخال میشه مسلمویه بعد زنبه رو تبدیل به کسره میکنیم تا اینکه دوباره یا تبدیل به واو نشه من مناسبت هم داشته باشه میشه چی؟ مسلمیه میگه و همچنین واقع و واوا به جای علیا خب بیا و زالکه نهو و بیانش اینه تو غ یا عتی فی آخر مزاف یاایی که در آخر مضاف هستش درست شو ادغام میشه فیه یعنی فلیا مضافه یعنی دریا مزافان عین. نهح و جانی قاضیه در حالت رفتی یا درییا در ادغام شده یا نه ها؟ الان هست تقدیرن مرکو است تقدیرن رعی و قاضی یه منصوبش برسته؟ در حالت رفعیشو مثال نزد چون حالت رفعیش علفه ادغامی صورت بگیر نمید یا نداره غلامی و زیدی یه این هم حالت نصبی جردیه حالت نصبیشه چرا؟ چون حالت رفعیش باز واق داره بعد میگه زعیدی یه تو به غازی یه حالت جلیش غلامی یه حالت جدیش یه داره زعیدی بازم حالت جلیش چیه؟ یاده اگر واق باشه چی؟ میگه ولواو توت قم و, و هم در یا میشه البته بعد از این که قلب به یا شد یا در یا اتقام میشه ایزن بعد از یا یاهن بعد از اینکه قلب به یا شد نگرد اودا بنی گ بنون بوده بنون اضافه بشه به سوی یا میشه چی بنوی بعد واو و یا در یک کلمه باید هم جمع شد. ولی اینجا مضاف و مضاف الی کل کلمت الواحدا نزا میگیم چی واو و یا در کل کلمت الواحده جمع شد واو قلب به یا در یا ادغام شده بنوی یا بعد ذممه رو تبدیل به یا کردیم شده چی؟ بنیگه اودا یعنی هلاکم ماتر این شیرمال مال ابو زوحی به در مورد پنج تا بچه‌اش که به تاون مرده بودن پنج تا پسرش گفته. میگه هلاک شدن پسران من مردن پسران من. و اعقبونی حسراتا. اعقبونی یعنی اورسونی به ارث گذاشتن برای من حسرت را. اعقبوا فعل و پایل یا مفعول اول حسراتا مفعول ثانی. و برای من به ارث گذاشتن حسرت و قصه را بعد در رقاد این بعدا اینجا به نظر نمیاد که صحیح باشه ان در لغات تو نسخ صحیحش ان در لغات یعنی چطور انسان اگه هر چی قصه داشته باشه تو روز سرگرمه این و اون و غیره و اینها فراغوش میکنه ولی قصه ها همه که میان سراغش موقعی که میخواد بخوابه یعنی ان در رقاد رقاد یعنی انو رقاد و رقود یعنی انو از این کلمه ما مرقد رو داریم. میگه موقع خوابیدن این در رغات موقع خوابیدن همه این حسرت ها میاد چی؟ سراغم بعد در رغات بعد از خوابیدن دیگه معنا نمیده این در رغات متعلق است به عقبونی حسرتی به من میدن در انگام خوابیدن و تن عبرتن عبرت جمعش ابر جمعش عبرات یعنی اشک ها یا قتیل الابرات به ما حسین میگن و ابرتن ادم جای و به من میدن اشک عشق رو اشکی که این صفته داره لا تقلع یعنی لا تنقطه قطع نمیشه عقل یعنی انقطع قطعو کنده میگه اشکی میدن که چی فروریز از همیشه قطع شد نیست ابرتن به جای اصلا و عشق رو برای من میارم خب این هم مال وا حالا میگه چی نگاه کنید و این ما قبل واون و این زمه فکسر و یهن. حالا اگر ما کلماتی داشته باشیم مثل زارب مثل مسلم که جمعش میشه چی؟ مسلمون زارب میشه چی؟ زارگون. زید میشه؟ زیدون موقعی که ما اینو اضافه میکردیم در حالت رفعی میشه چی؟ زیدیگه مسلمیگه زنبه را چی کارش میکردیم؟ تبدیل به کسره میکردیم حالا اگه کلمه ای داشته باشیم مثل مصطفا مصطفا جمعش میشه چی؟ مصطفاون مصطفاون درسته دیگه؟ اسم مفعول جمعش میشه چی؟ مصطفاون آخرش چی داره؟ فتحه داره چون علف میافته فتحه میمونه دلالت میکنن این فتحه رو چی کارش بکنیم؟ میگه که و این ما قبل واون این زمه فکسر حویه هم یه میگه اگر ما قبل و زمه داشته باشه کس بده مثل مسلم و یه میشیم چی؟ مسلم یه و این هم خیلی ساده است آسانه وحن یهنو لا تهنو و لا تهزنو انتومول علاون انکنتوم مومن یعنی خیلی هم ساده سهله ما قبلشو کس رو بده به مناسبت یعنی اگر فتحه باشه دیگه این کار رو بگید نکن واو واو آتف چیه واو واو استینافیه این این شرطیه ما مایه ما قبل وابن قبل وابن متعلق به یه استقرار سله ماسته. این ما نایفایل یه زمه مقدره که این زمه چی کارش میکنه؟ تفسیرش میکنه مثل این اهدون مرال مشرکی نه که فهد جرفا زمه جمله مفسره است فعل و نایفایل جمله مفسره است معلی اعرابی نداره فافای جزا اکسرهو فعل و فایل مفهول خوی اکسرهو میخوره به ما قبل با. اگر این ما قبل باف زن میداشت کسره بهش بده یهن یهن مجزوم است در جواب فعل امر یعنی انتکسر یهن اگه کسره بهش بدی می‌بینی که خیلی ساده است بیاید پایین و این ما قبل واون زمه فکسر هو. یهن مثل چی مثالش مثل همین زیدون که شد چی جا زیدی مثل مسلمون که شد چی مسلمی گه مثالش رو زدیم و این فوت حسابوقو حالا اگر ماقبلش چی باشه؟ مفتوح باشه فعبقهی فتحش رو بذار باقی بمونه نحو و هاولاه مبتدا مستفیت اینها مستفاهای منند یعنی انتخاب شده های منند مستفون مستفون اضافه شده به سوی یا شده مستفایت بعد وابو یا توی یک کلمه شپه یک کلمه جمع شده واب قلب به یا؟, یا در یا اطرام شده چی؟ مصطفیه دیگه فتحه رو تبدیل به کسره بگو نکن مصطفیه درست شد؟ ها اولائه مصطفیه در حالت رقی یعنی واب قلب به یا میشه اما دیگه فتحش تبدیل به کسره نمیشه در زم چرا؟ فقط موند اگر ما قبلش علف باشد که اون برای جلسی در